برابری. برابری نادرستی نظریه‌های های هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی برابری بنابه خدا با عرض سلام عده خدمت شنوندگانی گرامی بسیار خوشحالیم که در قسمت 33 برنامه برابری در خدمت شما هستیم به همراه جناب آقای ایران مهر گرامی تا قسمت 32 ما اومدیم در قسمت گذشته ما خصوصیات زندگی انسانهای اولیه که در شرق آفریقا زندگی می‌کردند و شیوه و در واقع فرایند تکامل مغزی اونها که چه اتفاقاتی افتاد که تصمیم گرفتند برای مهاجرت به شرق خب دلایلی که ما روش صحبت کردیم بیشتر روی دلایل تغذیه‌ای بوده که این هم معلول چندین علت بوده اینکه سن این انسان ها متوسط سن این انسان ها به خاطر حفاظت از خود به خاطر پیشرفت مغزشون و خاطر پیشرفت تکنولوژی که در واقع از اونها استفاده می‌کردن سنشون رو به بالا بود جمعیتشون در رو به ازدیاد بود، زاد و ولدشون داشت بیشتر میشد بیشت. و چون تولید و کشاورزی هنوز به وجود نیومده بود، از طبیعت استفاده میکردند و چون طبیعت قادر به بازسازی خودش در مقابل این نبود، این انسان ها برای اینکه بتوانند شکم خودشون رو سیر بکنند، برای اینکه بتوانند نیازهای خودشون رو برآورده بکنند، به این فکر افتادند که به سمت شرق در واقع با تمایل بشن حالا چرا به سمت قرم متمایل تمایل و وقت به سمت دریا بود و اقیانوس بود حالا به سمت شرق چرا این جهت رو تی کردن با در مورد این بحث خواهیم کرد در برنامه امروز و برنامه های ولی قبل از شروع مسئله با جناب آقایی ایران مهری گرامی در خدمتشون هستیم ظاهرم مباحثی از قسمت, سی و, قسمت سی و یکم هایی که از بحث جنتیک داشتن دارن. ازشون خواهش میکنم که فرمایشات خودشون رو شروع کنه خواهش میکنم استفاده کردیم های دکتر ما برای این که خیلی بحث ها دیگه هم دور نشه ما تلاش میکنیم که هنوز که تو شرق آفریقاییم با. و بحث مهاجرت به خروج از آفریقا رو شما مطرح نکردین ما این بحث رو یه مقدار ادامه بدیم و بحث نخستی ها رو تو آفریقا ببندیم که وقتی وارد بحث کوچ از شرع آفریقا شدیم دیگه همزمان پیش بریم ده ده. ما رسیدیم اونجا به بحث نظری تک مبدعی و چند مبدعی این چند فرضی چند مبدعی یا چند ناحیه در درباره تکامل انسان شواهدی میارن طرفدارانش میگن از شواهدی که میارن میگن ببینین آمیزش هایی روی ژنها میان میانه ها و انسان های خیلط امروزی دیده میشه پس مشخصه که اینا رفتن در جای مختلف تکامل پیدا کردن دوباره با هم دو آمیزش که این خیلی شاهد محکمی نیست. دو تا آمیزش ژنی میان انسان خردمند با انسان سایان دیگه دیده میشه. از جمله نئاندرتال ها و انسان تبار دنیسوا. این بله. انسان تبار دنیسوا به همین معمولی به انسان چین معروفه. انسان چین معروف سنگوارهایی داره گفتیم پیش از انسان خردمن انسان نماها انسان سایان دیگری از شرق آفریقا بیرون اومده بودن از انسان راس قامت بود که این تا اندونزی هم پیش رفت و به انسان جاوه معروفه جالبه این قدرش یه متر بوده بله دقیقا از یه متر بود حالا اونهایی که تو این راه بازمانده هاش یک گروهی از اینا تو چین تو این مسیر کوچشون چند صد هزار ساله موندن کم کم تکامل پیدا کردن اونجا به نام انسان چین و اونها هم مثل انسان های به بنبست تکاملی خوردن و نابود شدن منقرض شدن منطقه 6 درصد پوشش ژنی میان انسان خلدمن و انسان چین و انسان نهاندرتال دیده میشه که اونا در، گفتیم در اواخر دوره تکاملیشون بودن که ظاهرا آمیزش های محدودی میان اینها انجام شده و بعد اونا کلن نابود شدن و اون چی که مون ما موندیم با اون 6 درصد حامل 6 درصد از جنهای اونها بنابراین انسان امروزی یا انسان خیرتمند تنها گونه بازمانده از انسان توارانه بله اونهای دیگه کامل منقرض شدن انسانهای خیرتمند اون چیزی که شباید نشون میده میانه 400 هزار تا 250 هزار سال پیش دیگه به این شکل روند تکاملی شونه که به شکل انسانهای امروزی تقریبا در بیان در صد هزار سال پیش داشتن میپیمودن سپس از اینها انسانهای به نام انسانهای به بود. درست یعنی یه مقدار چجوری بگیم مثلا تراشیده تر شدن یه مقدار به حالت شکل انسانهای امروزی در آمدن. حدود دیویست سال هزار سال پیش این انسان به بود پدید اومد خوبه بدونیم که با رفتار نوین انسان‌هایی که دیگه امروز کاملاً به شکل امروزی میشناسیم، 50 هزار سال پیش دانشمندان میگن که دیگه کاملاً تراشیده شدن و به شکل امروز درآمدن. میان این انسان‌ها وقتی میگیم این جوری شدن اون جوری شدن ما یک سنگواره‌های گونه‌های انتقالی بااد داشته باشیم تنشون بدغه این جوری بوده و تکامل پیدا کرده از 20000 سال 20000 سال پیش این جوری شده. توی صدے گذشته خوشبختان این سنگواره‌ها میافت شدن و نشون میده. که این تکامل با این پله پله به این صورت شکل گرفت. برای نمونه گفتیم گونه جنوبی کپی آفریقایی مغزی حدود 410 سانتی متر مکعب داشت. بله اما یک ویژگی داشت این جنوبی کپی مغزش برخلاف شامپانزه و ها حالت گرد داشت. گرد اون حالت پخی رو نداشت. نمیشت. گرد بود. این نشون میده این سنگواره که این یک انسان سایی بوده که کم کم به سمت همون دودمان انسان هم پیش پیشرفته یک نکته دیگه هم که داشت این سنگ باره اینه که سوراخ پس سریش بله در قسمت زیر جمجمه قرار داشت یعنی نشون میداد که این داشته راست قامت راست قامت میشه می یعنی بله. به سمت راست قامت بله. پیش میرفته ولی خب به بنبست سراخ... بله بله بله بعد بله. بله شاید بعد به بنبست جنتیکی خورده بله به ژنتیکی بله. بله. بله. خورده و نسلش منقرض شده این سوراخ حس سر نبود زیر جم جمه قرار داشت و این نشون راست قامت بودنش داشت این جنوبی کپی آساها که ازشون نام میبریم اینا به دو تیره دو بخشینا رو تقسیم میکنن جنوبی کپی آساهای زریف رو اینا میگن نیاکان سرده انسان بودن نهلی که اینا هم جنوبی کپی آساها هم انسان خیلیت من هر دو از دودمان انسان تبارانن حالا ما توضیح میدیم که جنوبی کپی های آساهای, جنوبی کپی آساهای تنومند اینها اونایی بودن که دودمان گوریل ها رو ساختن، تشکیل دادن. حالا ما جلوتر می‌ریم اینها رو به حساب توضیح میدیم ممکنه ممکنه که جنوبی کپی های آفریقایی نیاکان مستقیم انسان نبودن. ممکنه. دانشمندا از شواهد ژنتیکی و سنگباری اینو حساب فهمیدن که ممکنه نبودن. یک به حساب یک تیره دیگه بوده که تا این روان تکامل رو ته تا انسان نماها پدید اومدن بخش تنومند تنومند جنوبی کپی آساها سرده ای رو به وجود آوردن که همینطور که گفتیم مثلا اونها جنوبی کپی های تنومند نیاکان گوریل ها شناخته شدن یعنی ظریف شد جنوبی کپی های زریف به اصطلاع شامپانزه ها و انسان ها رو اون تو اون خط تکاملی پیدا آوردن و جنوبی کیپ واسای گوریل ها رو حالا بعد که گفتیم بعداً شامپانزه‌ها هم آم. از اون گروه جدا میشه اینجا می‌رسیم به همون بحث تو بحث جنتیکی دی ان ای میتوکندریایی یا مادری و دی ان ای به حساب وایک که پدریه که شما چون شما دیگه کاملاً توضیح دادین ما رو راحت کردیم دیگه از این بحث می‌گزاریم ممنون نیای مادری و پدری حالا مطالعات خاصی رو به حساب انسان‌شناسا انجام دادن خلاصه میکنیم چیزایی که اینجا گفتیم به تدریج ستون فقرات انسان سایان صاف شده این حالت خمیده اومده بیرون حجم مغز افزایش پیدا کرده ترکیبات صورت زریفتر شده بله. یعنی گفتم حالت تراشخوردگی تراش طبیعت تو تکامل این کارا رو کرده برای مثال عضلات مربوط به جویدن همزمان با تغییر وضعیت دندان ها در انسان سایان کمتر شده یعنی ازوله فک ما به قدرت گوریل نیست چون حالت دندان هایی داریم که ما نیاز به اون ازولات چیز نداشتیم تو روند تکاملیمون قوی نداشتیم حالا نشانه هست در نخستیسانان عالی دوم در لگن خاسره به صورت استخان خاجی وجود داره همه دارن ما هم داریم حالا توضیح میدیم چطوری در ما دوم به مدت چهار هفته در طول هفته های 14 تا بیست و دوم دوره جنینی وجود داره. بله دوم هستش. دوم هست. بعدا کم کم کشیده میشه توی تنه توی ستون مهره و تو جای مختلف مثلا تو ایران به نام های مختلفی نامیده میشه. تو خوراسان مثلا میگن دنباله قضه. محله. گاهی مثلا وقتی میشینن کوهان درد میگیره محل لگن خاصرهشون اون دقیقا انتهای ستون مهره که همون دوم مراحل جنینی یعنی جنین. بعد تو طول تکامل چون نیاز نداشتیم اصلا گفتیم که گوریل ها شامپانزا و قران گوتان‌ها جزء بی دوم بودند دیگه که از دومداران کلاً جدا شده بودن اما هنوز اون چیز حساب ته دوم هنوز تو مراحل 14 هفته که تا 22 هفته که جنینی دیده میشه. ما هنوزم پلک سوم داریم این گوشه چشممون نزدیک تیغه بینی هنوز پلک سوم اون یه کوچولو اگه تو آینه هر کس نگاه کنه اونو میبینه ما هنوزم عضلات خارجی گوشو داریم همونطور طور که گوز گوشاشو تکون میده ما اون عضلاتو داریم اون تا چون نیاز نداریم دیگه کوچیک شده دیم دیم دیم. هست اما کوچیک, کوچیک شده شد. بگم که حالا میرسیم به یک نکته جالبی که آقای دکتر شما اشاره کردین من اینجا بعد میگم که ببینید چه نکته دقیق شما و چه مطلب مهمیه حالا اینو بگم بعد میذارم سراغ اون اندام یک نکته دیگرم بگم مثلا یه ماهیچهی داریم تو بدن به نام ماهیچه پلانتاریس که این کمک میکنه که شست پا و انگشتای مقابلش یک جسمی رو بگیرن مثلا شامپانزه هنوز هم, هم با پاش هم با دستش میتونه بگیره. شاخر رو نگه ما دیگه با پامون نمیتونیم این بکنیم ما دست یه ماهیچه من مسئول اینه به نام پلانتاریس جالبه ما هنوز و ماهیچه رو داریم متا کوچیک شده چون دیگه ما قرار نیست با پاموشا رو بگیم خب بعد هر وقت پزشکا بخوان برای جای دیگه ای مثلا یک اندام نرمی رو بره اونجا پیوند بزنن اون ماهیچه رو جاشو میدونن میرن در میارن پزشکا اونو چون دیگه زائد دیگه به کار نمیاد اما هست بعد میبرن جای دیگه تو بدن به پیوندش میذارن پیوندش میدن اسم ماهیچه چی بوده پلنیتاریس پلنیتاریس بله بل بل بل. خدمتتون بگم که جالبه حالا شما تکامل رو دکتر 9 درصد انسان ها امروز دیگه بدون اون مایه چزاده میشن یعنی آروم آروم داره کارایی نداره کارایی نداره برای دیگه داره از کار میافتید خب رو مردم دارن هنوز دارن حالا تکامل پیش بره این 90 درصد هی بیشتر میشه هی بیشتر میشه حالا برسیم به اون جالب جالبای دکتر یه اندامی از تو بدن به حساب پستان دارن حالا مشخصا به نام اندام ژاکوبسن بله این اندام تو مجرای بینیه و ها و مواد شیمیایی تحریک کننده جنسی رو تشخیص میده. خب، جالبه که ما این رو داریم، اما دیگه کار نمیکنه. دیگه کار نمیکنه. شما فرمودین هن... تو حدود 100 تا 16000 سال پیش جنس نر ماده هنوز در این ها که در شرق آفریقا بودن، خانوادهای تشکیل نشده بوده، اما زمانی که ماده دعوت میکرده نر رو برای آموزش جنسی و تناسل تولید مثل هو این چجوری بوده؟ دقیقا مثل جانوران پسنددارون دیگه بوده دیگه. یک بوی در از ماده در موقعی که آماده جفتگیری بوده از خودش متصاعد می‌کرده و جالب هنوز انسان‌ها در چند سال سال هزار سال پیش اندام ژاکوبسنشون کار میکرده کار میکرد. اون بو رو تشخیص می‌دادن و میآمدن سراغ جفتگیری با اون ماده. این اندام رو هنوز داریم. اما چون دیگه بعد قبیله تشکیل شد، خانواده تشکیل شد، به حساب دیگه اصلا نیازی نداشت که ما ماده اون رو متساعد کنه و ما بریم سراغش دیگه اصلا حالتا تغییر که تو روند تکاملی اون اندام داریم اما دیگه کار نمیکنه این نکته خیلی جالبی بود بله یا دندان عقل الان دیگه به کار نمیاد اما چون زمانی که انسان ها بیشتر از گیاهان تغذیه میکردند برای جویدنشون بله, مناسب, خیلی بود. مناسب, بله مناسب, بود. بود. مناسب بود الان دیگه خیلی دیگه واقعا میاد میکشند بله. الان دیگه کارایی نداره نداره. درباره این آخرین جدا شدگی تو این دودمانم که ما شامپانزه ها رو گفتیم یه نکته ای هست که همیشه دانشمندان میگفتن پس چطوریه که شامپانزه ها 48 کروموزوم دارن و ما 46 کرومزوم, کرومزوم داریم سال 2005 سرانجام این معما حل شد 237 میلیون جفت از اعضای تشکیل دهنده کرومزوم شماره دوی انسان مطالعهش نشون داد که این کروموزوم از جوش خوردن دو کروموزوم شامپانزه ایجاد شده یعنی ما وقتی از هم جدا شدیم این کروموزوم شبیه هم بوده سپس اون دو کروموزوم در انسان جوش می‌خورن حالا اون دیگه بعد دلایل ژنتیکی و چیز پیچیدهی داره که اینجا به کار ما نمیاد این توضیح بود که حساب دانشمندا براش دادن و اون مسئله رو هم حل کردن من از نام بردن این انسان هایی که از انسان ماهر و کارورز و اینا چون گفتیم دیگه میگذرم یک جدولی از حجم مغزشون قدشون اینا آش هست که دیگه حالا من خیلی وارد این نمیشم درباره ژنتیک هم اینجا دیگه چون به بحث ما به کارایی نداره توضیح نمیدیم آخرین بحث که من اینجا مطرح کردم بایداتون همون بحث کروموزوم e, 24 شامپانزه بود که ما گفتیم از از جوش خوردنش ما الان 46 کروموزوم داریم به 23 جفت کروموزوم داریم برای من بحث رو اینجا با گذار می‌کنم شما اون بله. بحث رو ادامه بدیم من فکر می‌کنم که تو بحث کوچ از شرق آفریقا دیگه حالا بتونیم دوش دوش پیش بریم بله خب وقتی برنامه هم تموم شده قسمت سی و وام فکر کنم باید به قسمت سی و چهارم منتقل کنیم این بحث رو شملگان گرامی رو تا آغاز قسمت سی و چهارم به خداونده متعال می خدا خدایی آرون